شما فکر میکنید چی که ازدواج رو موفق میکنه؟ سازگاری، عشق، روابط جنسی، استقلال، شاید وابستگی یا چیز دیگه ای؟ در درس امروز خواهیم شنید که ازدواج یک رابطی مشیتی، دائمی، انحصاری و فراگیره. ابزاری که باعث میشه این تحقق پیدا کنه، گفتگوه. بله. گفتگو ابزاریه که زامن بقای یگانگیه. بیاید با هم به درس امروز گوش کنیم. گفتیم که گفتگو کردن ابزاری برای حفظ یگانگی و وحدت در این رابطه ازدواجی هست که خدا ترتیب داد. بعدها در مورد سرپرستی فرزندان مطالعه کاملی خواهیم داشت و به بررسی رابطه بین فرزند و پدر و مادر از همان لحظه تولد خواهیم پرداخت. و خواهیم دید که این رابطه‌ای هست که از طرف خدا مقرر شده و ضمن مطالعه سرپرستی در مورد چیزهای مربوط به نحوه جدا شدن این رابطه صحبت خواهیم کرد به عنوان یک پدر یا مادر خوب شما باید بدونید شروع اون رابطه از زمانی هست که شما اون کودک رو از بیمارستان به خانه میارید مثلا در اون زمان شما 20 ساله هستید و بعد روزی اون کودک بزرگ خواهد شد و در جایی به دانشگاه خواهد رفت و یا مرحله جدیدی از زندگیش خواهد شد به هر حال اونها خواهند دانست که باید به فکر خودشون باشه اونها با خودشون خواهند گفت من هر کاری که بخواهم میکنم و کسی نمیتونه جروه منو بگیره. شما باید از زمانی که اون کودک در قنداخ هست به فکر این باشید که این رابطه ای هست که روزی مقدر هست که جدا بشه. رابطه بعدی یعنی ازدواج کاملا برخلاف این هست. اون مثل ازداء یک مثلث هست که به جای دور شدن از هم به هم نزدیک تر میشن. شما به عنوان شوهر در گوشه چپ و همسرتون در گوشه راست قرار دارید و این رابطه هیچ شباهتی به رابطه والدین با فرزندان نداره که روزی جدا خواهند شد. قرار نیست رابطه ازدواج به جدایی ختم بشه. رابطه ازدواج روز به روز نزدیکتر و نزدیکتر خواهد شد. حالا شاید این شما رو افسرده بکنه. اولین باری که من و همسرم اینو شنیدیم، این به نظر او چیز ترسناکی بود و او رو ناراحت کرد چون که ما با هم دیگر نزدیک نبودیم. او مشغول ساختن خانواده در یک دنیا بود و من در دنیای دیگر مشغول ساختن پادشاهی بودم و ما به هم نزدیک نبودیم. یک بار واعظ پیری درباره این نظریه هرم یا مسلس با ما صحبت کرد که زن و شوهر چطور به هم نزدیک میشن. اون موقع تابستون بود. اون سال ما رو دعوت کردیم که به کلیسای ما بیاد و وقتی که او آمد ما بیشتر راجع به این موضوع بازتر بودیم. ما بیشتر راجع به این موضوع بازتر بودیم. ما فهمیدیم که یک رابطه زناشویی باید اینجوری باشه. این رابطه ای مشیتی هست. این رابطه ای دائمی هست و رابطه ای انحصاری هست و رابطه ای فراگیر. ما باید روی این رابطه کار کنیم. خب گفتگو کردن به ما ابزاری میده که میتونیم به وسیله اون روی رابطه ازدواج کار بکنیم. اگر ارتباط نداشته باشیم ابزاری برای، کار روی این رابطه نخواهیم داشت. من تعریفی از ارتباطات بهتون دادم و دوباره با همون شروع خواهم کرد. این یک لغتنامه استاندارد برای تعریف ارتباطات است. ارتباطات، دادن و گرفتن اطلاعات، پیامها و نظرات است توسط گفتگو، اشارات و یا سایر وسایل. حالا بر اساس تعریف فوق اینجا میتونیم بعضی چیزها رو ملاحظه کنیم. ارتباطات همیشه دو بود داره. بوده دادن و بوده گرفتن و به این ترتیب برای مشکل ارتباطاتم هم همیشه دو بود وجود داره فرستنده و گیرنده مشکل میتونه در فرستنده باشه یا میتونه در گیرنده باشه مشکل ارتباطات حداقل در دو اندازه ظاهر میشن یک اندازه سکوت هست مردم میگن هیچ ارتباطی بینشون وجود نداره این اولین چیزی هست که تقریبا در ابتدای هر جلسه مشاوره گفته میشه ما با هم هیچ ارتباطی نداریم البته منظورشون معمولا اینه که ما با هم صحبت نمی‌کنیم. حالا سکوت همیشه به این معنی نیست که شما مشکل ارتباطات دارید. اما غالبا معنیش همینه. مردم متفاوت هستند. من در صحبت خیلی وسواس دارم و از سکوت خیلی ناراحت میشم. مخصوصا اگر در حال دادن پیشنهادی هستم، اون وقت اصلاً نمی‌تونم سکوت رو تحمل کنم. من مثل یک آدم نادان مرتبا و راجی می کنم و به صحبت ادامه میدم. من گاهی این سکوت عمیق رو تحسین می زمان‌هایی زمانهایی که فقط لازمه که من صحبت کنم. من برای نجات زندگی مردم کمک می کنم. من فکر می کنم سکوت مطلق هم کم لطفیه. دوست بسیار خوبی دارم که دندان پزشک هست و آرامترین مردی هست که من تا حالا دیدم. یه روز توی سفر با او من مثل یک آدم ابله پشت سر هم صحبت می کردم و به او گفتم: تو نمیخوای چیزی بگی او گفت خب بذار یه چیزی بهت بگم وقتی آب عمیق آرام و ساکت هست اما وقتی عمیق نباشه دائما در طلاتمه دائما صدای خروش اون میاد البته اون نمیخواست منو برنجونه چون واقعا منو دوست داره او اونجا نکته ای داشت میدونید وقتی میگیم رودخانه خروشان معنیش دقیقا اینه که آب از روی سنگها جاری میشه و به اونها برخورد میکنه و صدا میکنه پس اگر شما با یکی از اون افراد عمیق و ساکن ازدواج کردید، این به این معنی نیست که شما مشکل بزرگ ارتباط دارید. یکی از زیباترین راه‌های با هم بودن ارتباط داشتن هست که معنی اصلیش به معنی ارتباط کلامی هست. شما میتونید با هم راحت باشید. لازم نیست که حتما صحبت بکنید تا با هم راحت باشید. ببینید صحبت نکردن همیشه به معنی داشتن مشکل ارتباط نیست اما اندازه دیگری که مشکل ارتباط به وجود میاد، مشاجره هست. اما سایز دیگری که مشکل ارتباط دیده میشه، مشاجره هست. شما بدون عصبانی شدن نمیتونید پنج دقیقه با هم صحبت کنید. حالا چیز دیگهی که میتونیم بر اساس تعریف عملی ارتباطات بگیم اینه که چیزی به نام نداشتن ارتباط وجود نداره. ما همیشه با هم ارتباط داریم، اما مسئله اینه که چه ارتباطی داریم. چطور ارتباط برقرار می کنیم؟ اما همیشه ارتباط دارید همونطور که در تعریف ارتباطات گفتیم این می تونه با صحبت اشاره و یا هر چیز دیگه باشه سکوت برای تحقیر نوعی از ارتباط هست و این به معنی این هست که شما مشکل برقراری ارتباط دارید اگر همسر شما به خاطر اینکه او را ناراحت کردید سکوت کرده این سکوت نوعی تحقیر هست خانمی که همسرش غالبا این کار رو می کرد می گفت. شما باید وقتی او صحبت نمیکنه، واقعا باید به او از نزدیک گوش کنید. چون اون موقع او داره چیزی میگه. یه روز وقتی شبان یه کلیسای کوچک بودم و صمیمانه با همه ارتباط برقرار میکردم، کسی به من تلفن زد و گفت: فکر می کنم بهتره بری و زن منو ببینی او خیلی ناراحته گفتم چرا فکر می کنی او ناراحته گفت وقتی داشت سوار ماشین می تو چوب گلف منو از ماشین بیرون انداخت و وقتی به او گفتم کجا میری؟ جواب داد میرم گلف بازی کنم. از او پرسیدم فکر میکنی او با پرد کردن چوب گلف میخواسته به تو پیغامی بده؟ او جواب داد بله اینطور فکر میکنم. من گفتم کاملا امکان داره. او داشت اونجا چیزی به تو میگفت. شاید باور نکنی. اما من بارها سراخهای روی دیوار دیدم فقط به این خاطر که مردی به دیوار مشکو کوبیده بود. و معمولا هم این سراخها همیشه روی دیوار بودند میدونید این نوعی حرف زدنه؟ فکر نمی این یک نوع ارتباطه؟ از طرف دیگه یه لبخند، دست روی شانه گذاشتن، بغل کردن، عشق ریختن، همه اینها برقراری ارتباطه. چیزی به نام نداشتن رابطه وجود نداره. گاهی شما از طریق حرکات ارتباط برقرار می کنید اما میتونه ارتباطی گویا باشه. فرانسیس آسیسی یکی از قهرمانان منه. او میگفت در همه چیز مسیح رو مسی جایی که قطعا لازم باشه از کلمات استفاده کنید من فکر می کنم این گفته زیبایی حالا میتونیم در مورد برقراری ارتباط بر اساس این رابطه به یک نتیجه گیری برسیم اولا برقراری ارتباط چیزی که گفته میشه نیست چیزی که شنیده میشه نیست هست شاید این چیزی نبوده که او گفته این چیزی که طرف مقابل برداشت کرده برقراری ارتباط چیزی که گفته شده نیست میتونه برداشتی از حرکات و چیزهایی مثل اون باشه برقراری ارتباط لزوما چیزی که گفته شده نیست اون میتونه چیزی باشه که مردم میخوان بشنوند من شیفته این هستم من از توانایی مردم حیرت میکنم که اونها چطور میتونن چیزی رو که میخوان بشنوند مهم نیست که کلمات چی بوده همینطور میتونیم دیدگاههایی با توجه به تعریفی که کردیم در مورد برقراری ارتباط به دست بیاریم ما یک استاد سخنرانی داشتیم یه بار وارد کلاس شد که کلاس کاملا هرج و مرج بود. سر و صدا خیلی زیاد بود و همه با صدای بلند صحبت می کردم. او به پشت تریبون رفت و با دستش محکم روی تریبان کوبید. اون مثل صدای یک تفنگ بود و همینطور که دستش روی میز می گفت الان میخوام درست وسط جهنم باشم. و بعد سالون کاملا ساکت شد. تمام کلاس تحت کنترل او در و بعد به ما توضیح داد که چیکار کرده بود. او میگفت 7 درصد از مکالمه کلمات هستند 55 درصد تاکید بر روی کلمات هست و 38 و درصد زبان اشاره هست که با کلمات گفته شده همراهی میکنه او گفت من میخوام وسط جهنم باشم این کلاس رو کنترل نکرد اگر مردم چیزی رو که او گفته بود عمل میکردند باید کاملا برعکس میشد بلکه این تاکید او بر این کلمات بود که کلاس رو آروم کرد رو از گفتن این کلمات این بود که بگه من میخوام این کلاس نظم بگیره و بعد با کف دستش ضمن گفتن حرفش بر روی میز کوبید و به قول او و 38 درصد هم این بود به این جمله فکر کنید یک زن بدون شوهرش گم شده است معنیش رو فهمیدید حالا دوباره بهش فکر کنید حالا من جمله رو طور دیگه ای میگم و معنی اون تغییر میکنه. آماده هستید یک زن بدون شوهرش گم شده است چه چیزی معنی جمله رو تغییر داد؟ لحن ادای جمله معنی جمله رو تغییر داد. خب تمامی این نوع چیزها در گروه یک تعریف کوتاه هست که شما از دیکشنری وبستر میتونید پیدا کنید. برقراری ارتباط، دادن و گرفتن اطلاعات، پیام و نظرات به وسیله صحبت، اشاره و یا سایر چیزهاست. حالا متخصصین میگن که سطوح مختلفی از برقراری ارتباط هست. یک سطح قطع کامل ارتباط هست که در اونجا شما کلمات مبتزلی به کار میبرید که هیچ چیزی رو به طرف مقابل انتقال نمیدید. بعد اطلاعات واقعی هست. نظریاتی در مورد هوا، اخبار، حوادث که چیزهایی رو در میون میذاره که شما میدونید. بعد نظرات و ملاحظات درباره چیزهایی هست که برای شما مهمه. این در میون گذاشتن چیزی هست که شما به اون فکر میکنید. این صحبت رو گرم میکنه. بعد احساسات و عواطفی هست که با شور و حرارت نشون میدید. این نشون میده که احساس شما در مورد چیزهایی که براتون مهمن چیه؟ این بالاترین سطح از گفتگو هست. بعد اون صحبتهای سمیمانه هست درباره اینکه شما کی هستید؟ کجا هستید؟ و فکر میکنید باید کجا باشید؟ این صحبت کردن از خودتون هست و سطح بالاتری از گفتگو هست. در ازدواج‌های مسیحی، چون قرار هست که ما بر طرف مقابل تمرکز کنیم وقتی میگید که شما فکر میکنید همسرتون کی هست و فکر میکنید که همسرتون چی هست و کجا هست و باید کی، چی و کجا باشه و شما دوست دارید ببینید او در کجا هست من فکر میکنم این هنوز هم سطح بالایی از گفتگوها هست چیز دیگری که در مورد گفتگو باید بگیم ارزش و اولویت گفتگوها هست رو راست بگم من فکر میکنم. همه ما در فرهنگ خودمون و این شامل زوجهای مسیحی هم میشه. ارزش بالایی به این سطوح امیختر قائل نیستی. چون که ما زمان، انرژی و مکان برقراری اون ارتباط رو اولویت بندی نمیکنیم. گفتگو کردن زمان میبره. اگر به صحبت کردن ارزش قائل نشید، برای اون وقت نمیذاری. یک بار چند زوج رو در مورد صحبت کردن به چالش کشیدم. ما بحثی داشتیم. و من در مورد این صحبت می کردم که گفتگو کردن با هم رو در اولویت قرار بدیم. همسر یکی از زنان جراح بود و اون خانم گفت تنها راهی که من میتونم با همسرم گفتگو بکنم اینه که روی برانکارد دراز بکشم که اون رو به طرف اتاق عمل میبرند و وقتی او میخواد ماسک رو روی صورتم بذاره اون موقع بهش میگم این من هستم همسره، بیا کمی صحبت کنیم چون که او اصلاً زمانی برای صحبت نمیذاره. این نشون میده که اون مرد ارزشی برای گفتگو کردن قائل نیست. خب اگر شما برای گفتگو ارزش قائل نباشید، یقینا صحبت هم نخواهید کرد. صحبت کردن زمان میخواد، انرژی میخواد و جسارت لازم داره. یکی از دلایلی که ما صحبت نمی کنیم اینه که خیلی خسته هستیم. میگیم خیلی خسته‌ام و ما فکر میکنیم قرار نیست که صحبت کردن هم انرژی ما رو بگیره. پس نمیخوایم برای اون انرژی صرف کنیم. ما برای هر چیز دیگری انرژی صرف می کنیم. از ساعت شش یا هفت نیم صبح ما برای چیزای انرژی صرف می کنیم که برامون مهمن و وقتی به خونه می رسیم و نوبت به صحبت کردن میرسه ما به صحبت کردن ارزش قائل نیستیم که براش وقت و انرژی صرف کنیم. پاول تورینر در کتاب خودش به نام درک متقابل در فصل اول گفته برای درک همدیگر باید با هم گفتگو کنیم. در فصل دوم گفته صحبت کردن جسارت میخواد اگر میخواهید واقعا صحبت کنید صحبتی در سطح عمیق اون جسارت میخواد پس من پیشنهاد می این رو به عنوان مقدمه موضوع در نظر بگیریم ما باید برای گفتگو ارزش قائل باشیم که براش زمان بذاریم. باید اونقدر برای گفتگو ارزش قائل باشیم که براش انرژی صرف بکنید و باید اونقدر برای گفتگو ارزش قائل باشیم که جسارت گفتگو داشته باشیم سالها پیش من به خیلی ها مشاوره ازدواج می دادم حدود 20 سال کارم همین بود تمام وقتم صرف این نوع مشاوره ها می شد. در کنار اون من پروژه کوچه که تحقیقاتی هم داشتم بسیاری از زوج در همون پنج دقیقه اول میگفتند که مشکل برقراری ارتباط دارن. در طی ده سالی که من مشغول تحقیق بودم از زوج ها می پرسیدم آیا تا حالا گفتگوی خوبی با هم داشتید تقریبا جواب همیشه بله بود. اکثر این زوچه هنوز ازدواج نکرده بودند که با همدیگر صحبت نمیکردند. اونها می بله زمانهایی بوده که ما تمام شب رو صحبت می کردیم. در واقع وقتی تازه آشنا شده بودیم اکثر شبها تمام طول شب رو صحبت می کردیم. اکثر اونها همین جواب رو می دادن. ازشون میپرسیدم خوب خب حالا چی؟ میگفتند نه الان هیچ صحبتی نداریم. بعد از اون من به اونها مأموریتی می دادم. اگر مشکل برقراری ارتباط اونها این بود که دیگه صحبت نمیکردند، از اونها میخواستم که لیستی از دلایلی رو که با هم صحبت نمی کنن برام بنویسن و به اونها میگفتم صادقانه قول بدید که اون رو به طرف مقابل نشون ندید اما یه لیست تهیه کنید و من هم قول میدم که اون رو به دیگری نشون ندم اگر اونها نمیتونستند بدون عصبانیت صحبت کنند من به اونها میگفتم لیستی از دلایلی رو که چرا در موقع صحبت کردن با همسرتون عصبانی میشید؟ تهییه کنید. در طی ده سال من اون لیست ها رو جمع میکردم و اونها رو مطالعه میکردم. اینجا 24 مورد از مشکلات رایج صحبت کردن از لیست هایی که مردم به من دادن تهیه کردم. اولا گاهی این زن بود که این رو می و گاهی مرد و گاهی هر دوی اونها. بعضی از اونها بیشتر از طرف خانم ها بود و بعضی از اونها بیشتر از طرف آقایان. اما اینجا لیستی از رایجترین مشکلات رو براتون تهیه کردم. دلیلی که چرا مردم نمیتونند با همسرشون صحبت کنن و یا نمیتونند بدون عصبانیت صحبت کنن در این 24 مورد اومده. اونها وقتی صحبت رو متوقف کردند که متوجه شدن همسرشون گوش نمی‌کنه. مثلا زن میگفته امروز بچه انگشت پاش رو گرفته بوده و این خانم خیلی برای این چیزها هیجان زده بود. اما همسرش اصلاً توجهی نمی‌کرد. او از نظر ذهنی هنوز هم سر کارش بوده یا شاید سرش توی روزنامه بوده خانم همچنان به صحبت درباره نوزاد ادامه داده و ادامه داده و مرد همچنان سرش توی روزنامه بوده و هیچ توجهی نکرده خب هیچ کس دلش نمیخواد وقتی بهش توجه نمیشه متکلم وقته باشه به نظرم او هم مثل من مانند یک آدم ابله و راجی میکرده و همش حرف میزده و شوهرش حتی گوش نمیکرده ببینید گوش نکردن چیز بسیار جدیه این عدم علاقمندی رو نشون میده. مثل این میمونه که به زنش بگه من علاقه ای به تو و به بچه ای تو ندارم. خب اون موقع زن دیگه در مورد بچه و چیزهایی مثل اون صحبت نخواهد کرد. یا مرد بسیار مشغول بوده یا زن و به هیچ وجه در گفتگوها نقشی نداشتن. آیا خسته نمیشید که همیشه شما صحبت رو شروع کنید و شما ادامه بدید و طرف مقابل حتی یک کلمه هم نگه؟ اگر شما سوال نکنید هیچ گفتگویی نباشه سکوت مطلق باشه ببینید گفتیم که برقراری ارتباط یا گفتگو دادن و گرفتن هست یکی از طرفین با خودش فکر میکنه خب همیشه من صحبت میکنم او هرگز چیزی نمیگه تنها کاری که اون میکنه جواب دادنه گفتگو مثل یک پل هست شما نیمی از اون رو میسازید و تا وسط راه میایید و نیم دیگرش را من خواهم ساخت اما میبینید همیشه یک طرف پل رو ساخته و طرف مقابل هیچ نقشی نداشته او هیچ وقت پیش قدمش رو صحبت نشده هیچ اشتیاقی برای صحبت نشون نداده او با سکوت تحقیرامی زیبا نشون داده حق می کرده رنجیده عصبانی شده در لیستی که ما داشتیم چیزهایی مثل این زیاد بود همسر من پرخاشگر هست میدونید یک شخص پرخاشگر چی هست سلیمان گفته زن ستیزجو مانند چکه هایی هست که در روز بارانی اسق چک چک میکنه اون فقط صدای چک چکش میاد خب زن ستیزه چی هست مرد ستیزه چی هست زن و مرد هر دو به یک اندازه در ستیزه جویی ماهر هستند معنیش اینه که شما با هر چیزی که پیش میاد مخالفت میکنید اگر بفهمید که طرف مقابل میخواد نظر جدیدی ارائه کنه دلتون میخواد با او مخالفت کنید میگید 15 تا دلیل بهت میدم که چرا با اون مخالفم این باعث ستیزگری دائمی میشه کتاب مقدس گفته که کارکنان کلیسا یا مشایخ نباید ستیزجو باشن چرا چون که شما دلتون نمیخواد جلسات و منا تا ساعت سه صبح طول بکشه اگر رهبران کلیسا با هر چیزی مخالفت بکنن شما هرگز نخواهید توانست طبق برنامه تنظیمی پیش برید خب صحبت کردن با شخص ستیزجو مثل جنایت هست. یه بار زوجی پیش من اومدن و زن میگفت که مرد شب جمعه با ماشین جدیدی به خانه رفته و از او نظر نخواسته ما با هم صحبت کردیم از او پرسیدم چرا راجع به ماشین با او صحبت نکردی او گفت راستش خیلی دلم میخواست. اما نمیخواستم که هزار دلیل بشنوم که چرا نباید ماشین جدید بخرم زن میگفت و تازه از سر میزشان بلند شده بود و رفت بیرون و سه چهار ساعت بعد اومد و وقتی نشست ازش پرسیدم آیا این کار درستی بود و او گفت بله من از مرد پرسیدم میشه به ما بگی چرا؟ مرد گفت خب آخه اگه من به او میگفتم میخوام برم فوتبال تماشا کنم اون عصبانی میشد منم به تماشای بازی رفتم و برگشتم خونه اون هنوزم از دست من عصبانیه زن گفت این بار اولش نیست در بعضی از این چیزها مردها بهتر از زنها هستند و در بعضی ها زنها بهتر از مردها من فکر میکنم جالب اینه که مردها چقدر مستعد هستند که وقتی بچه ها چیزی میخوان به بچه بله. اگر بچه ها میخوان کاری بکنن مادرها غالبا میگن نه به عبارت دیگه شما باید مردها رو قانع کنید که چرا میگید نه احتمالاً پدرها همیشه میگن بله اما شخص جو میتونه هم زن باشه هم مرد بعد زوجهایی رو داشتیم که مشکل خیانت داشتن که چالش وحشتناکی برای یک ازدواج هست. امکان نداره اگر ریشه بدگمانی در یکی از طرفین باشه بشه به او کمک کرد اگر زن پنج دقیقه دیر به خونه بیاد شوهر میپرسه کجا بودی و این نوع چیزها مانند آواری روی برقراری ارتباط می ریزند حالا در تمام این مشکلات رایج من می دیدم که خودخواهی مشکل اصلی هست. تمام اینها اگر تجزیه تحلیلشون بکنید در ریشهشون به خودخواهی خواهید رسید اونها به طرف مقابل متمرکز نیستن. اونها به خودشون تمرکز میکنند به این دلیلی که علاقه ندارند به این دلیلی که گوش نمیکنند به این دلیلی که به طرف مقابل اهمیتی نمیدن که روزش رو چطور گذرونده همش به این دلیلی که خودمهور هستن و البته میدونید که چاره تمام این مشکلات عدم خودخواهی و تمرکز بر طرف مقابل هست ما زوجی رو در کلاسمون داریم که میخوان ناشناس بمونن اخیراً اونها پنجاهمین سالگرد ازدواجشون رو جشن گرفتن و در جشنشون کسی از اونها پرسید چطور تا به اینجا رسیدید؟ اونا گفتند. ما به طرف مقابل تمرکز کردیم قرار دادن طرف مقابل در مرکز کلید هست اون به ازدواج شما دوام میبشه به این دلیل که شما میتونید 50 سال با هم زندگی کنید و دلتون میخواد 50 سال دیگه هم ادامه بدید حالا نوع دیگری از مشکلات برقراری ارتباط هست که در این لیست اومده و دسته دیگری هستند که من به اونها مشکلات عملی میگم اینها سبب انواع مشکلات در برقراری ارتباط میشن اما چیزهای عملی هستن مثل امتناع از وقت گذاشتن برای صحبت کردن تلویزیون هم میتونه یک مشکل واقعی باشه گفته میشه که زوجهای زیادی مشکلات برقراری ارتباط دارن اما تا زمانی که تلویزیون خراب نشه اونها متوجه نمیشه وقتی تلویزیون خراب میشه و اونها یک ماه بدون تلویزیون میمونن اون وقت با خودشون میگن ما اصلا صحبت نمی کنیم. ما اصلا رابطه‌ای با هم نداریم ما اصلا توانایی این کار رو نداریم حتی نمیدونیم چطور باید صحبت کنیم وقتی من شبان کلیسای کوچکی بودم وقت داشتم که از نزدیک با مردم ملاقات کنم. یک شب به خانه دعوت شدم و این خانواده از سر میز شام مصیبت باری بلند شده بودند. پدر خانواده در یک ماسسه بیمه کار میکرد و شبها بیرون میرفت اکثر کار و فشار کاری او شبها بود و برای استراحت و تجدید اعصاب و برای خوردن شام به خونه می البته او تمام مدتی که در خانه بود با لباس مرتب و آماده برای انجام وظیفه سر میز مینشست. همسرش سر میز شام گفته بود از بانک تلفن زدن و گفتند اگر قصد های خونه را ندیم خونه ما را خواهند گرفت. و در همون لحظه بچه کوچک تمام غذا رو روی لباسش ریخته بود بازوی پدرش را گرفته و شروع کرده بود به گریه کردن. مرد به کت شلوار تمیز و زیبای خودش نگاه کرد و دید که تماماً چربی شده و یک دفع از کوره در رفت نزدیک بود میز رو برگردونه او در حالی که مشغول سیگار کشیدن بود ناگهان شبان دوست داشتنی ریز میزه چشم قهبهی وارد میشه چیزی که ما با همدیگه متوجه شدیم این بود که اونها یک آمل عملی رو در برقراری ارتباط نادیده گرفته بودند. ما به این عامل زمان و مکان میگیم انواع مختلفی از برقراری ارتباط در حضور بچه ها وجود داره. و باید زمان و مکان مناسبی برای این نوع ارتباطات باشه. این زمان و مکان مناسبی برای صحبت سر میز شام نبود. اون گفتگویی بود که باید انجام میشد. اما اونجا میز شام بود. وقتی اونجا شما در مورد این واقعیت صحبت نیکنید که بانک میخواد خونه شما رو مصادره کنه، این صحبتیه که بچهها واقعا نباید بشنند. و باید بگم که این خانم زمان مناسبی رو برای این صحبت انتخاب نکرده بود. هم زمان و هم مکان برای این صحبت نامناسب بوده. حالا استدلالش هم این بوده که ما هیچ زمان مناسبی نداریم. مکانی نداریم. چون که او نمیخواد در مورد این چیزها صحبت بکنه. البته این هم حقیقتی بود. باید زمان و مکانی برای صحبت باشه. اما نادیده گرفتن عامل زمان و مکان فقط یک برهمزننده عملی ارتباطات هست. چیزی به نام رفتارهای برقراری ارتباط داریم. رفتارهای برقراری ارتباط رو میتوان یاد گرفت میتونید اونها رو از مادرتون یاد بگیرید از پدرتون یاد بگیرید و چیزی هم به نام زن قرقرو وجود داره البته شوهران قرقرو هم داریم همه ی مشکلاتی که گفتیم دو جانبه هستن هم در زنان هم در مردان اگر یادتون باشه در اون مجسمه چوبی که گفتیم با حلقه هایی به هم وصل شده بودن همه حلقه ها جفت بودن. همه اما شما میتونید به بعضی از رفتارها در برقراری ارتباط عادت کنید مثل قرض دادن یا پرخاشگری یا هر چیز دیگری خوب در ارتباطات به نظر میرسه که شما این شانس رو دارید که شروع کنید شما شیفته همسرتون هستید عاشق او هستید و صحبت رو شروع میکنید و به خوبی پایان میبرید اما به مرور زمان بعضی از این عادت ها رو در خودتون پرورش میدید و برخی از اونها فقط از روی عادت هستند مثل قرض پرخاش کردن یا این قبیل چیزها. گاهی مشکل عملی برقراری ارتباط امتناع از درک نیاز همسرتون به داشتن زمان تنهایی هست. این تأثیری بر روی صمیمیت شما نداره و گاهی باید هر دو طرف زمانهای خلوت داشته باشند. از اینکه همسرتون یا خودتون نیاز به تنهایی دارید وحشت نکنید. چون که هنوز عرصه هایی هستند که در اونها ما دو نفر هستیم. هنوز یکی نشدیم. من فکر میکنم این مشکلات عملی فقط با درخواست حکمت از خدا قابل حل هستند. یکی از آیات مورد علاقه من در یعقوب باب یک آیه پنج هست که میگه هر کدام از شما که حکمت ندارد از خدا بطلبد من هرچه سنم بالاتر میره بیشتر این دعا رو میکنم. همیشه میبینم که نیاز دارم به خدا بگم من نمیدونم چیکار کنم. من به حکمت تو نیاز دارم. تو گفتی که اون رو بتلبم. تو گفتی که اون را از ما دریغ نمی کنی پس من میطلبم و گاهی تعجب می کنم که او چطور حکمتی رو که من نیاز دارم به من اطا می کنه. همینطور مشکلات فیزیکی برقراری ارتباط هم هست. من فکر می کنم ما نباید اهمیت عامل فیزیکی رو در برقراری ارتباطاتمون نادیده بگیریم. مثلا اگر همیشه زمان گفتگوی شما در نیمه شب باشه و هر دوی شما روز پرکاری رو پشت باشید، این میتونه بر گفتگوهای شما تأثیر بذاره. وقتی هر دوی شما خسته هستید، نمیتونید به بهترین وجه با هم گفتگو کنید. وقتی یکی از شما بیمار هستید، آیا فکر نمیکنید که این بر گفتگوهای شما تأثیر میذاره؟ اگر شما شوهر حکیمی باشید، فکر میکنم باید بدونید که حتما تأثیر میذاره. من زوجی رو میشناختم که اصلاً نمیشد با خانم صحبت کرد. قرار بود گوش او جراحی بشه چون تشخیص داده بودند که سرطان تمام گوشش را گرفته و این باعث شده بود اختلالی در عواطف او به وجود بیاد که بودن با او را بسیار مشکل کرده بود این یک عامل فیزیکی در رابطه آنها بود اگر همسر شما افسرده هست آیا فکر نمی‌کنید که این بر رابطه شما تأثیر می‌ذاره امکان داره شوهر و یا زن نخان به یک آهنگ تکنوازی گوش کنند. اگر هر کدام از شما مریض باشید و یک جراحی رو پشت سر گذاشته باشید آیا توجه کردید که چقدر دوست دارید راجب جراحیتون با دیگران صحبت بکنی؟ توی اصطلاح روانشناسی به این عقده شهید نمایی میگن اما حتما توجه کردید که کسی هم به این اینجور چیزها علاقمن نیست من سالها پیش وقتی بیمار بودم اینو یاد گرفتم مردم از من میپرسیدن حالم چطوره و من متوجه شدم که اونها اصلا گوش من میگفتم عالی نمی باور نکردنیه. و بعد می دیدم که هیچ کس خواد به چنین صحبت طولانی در مورد سلامتی من گوش کنه. هیچ کس خواد چنین چیزهایی رو بشنوه. خب این هم می تونه عاملی فیزیکی در برقراری ارتباط باشه. دنبال این بحث رو در قسمت بعدی براتون خواهم گفت. خب بحثمون رو در مورد ابزارهایی برای حفظ یگانگی ادامه میدیم. خب در قسمت قبلی گفتیم که یکی از چیزهایی که باعث مشکل در برقراری ارتباط میشه عاملی هست به نام عقده شهید نمایی معمولاً افرادی هستند که وقتی بیمار میشن یا عمل جراحی رو پشت سر میذارن دوست دارن که در مورد این صحبت کنن و گفتیم که مردم معمولا دوست ندارن چنین چیزایی رو بشنون حالا میرسیم به عوامل روانشناسی در برقراری ارتباط البته بگم که من روانشناس نیستم اگرچه در دانشکده درس های روانشناسی هم خوندم اما چیزی داریم به نام بیماری روانی و چیزی داریم به نام مشکلات روانشناسی اگر شما با کسی که مشکلات روانشناسی داره ازدواج کردید و یا خودتون مشکلات روانشناسی دارید خودتون رو گول نزنید این مشکلات بر روابط شما تاثیر میذارند در این لیست مشکلات برقراری ارتباطات چیزهای زیادی از این قبیل مطرح شده مثل اینکه اگر همسر شما افسرده هست، این بر ارتباطات شما تأثیر خواهد گذاشت. اگر عصبانی هستید همونطور که گفتم خود من در اوایل ازدواجم عصبانی بودم. باور کنید که این بر گفتگوهای شما تأثیر خواهد گذاشت. اگر کسی از خودش عصبانی میشه این چیزی واقعی هست در کتاب مقدس همین را میبینید این همون کاری بود که قائن کرد وقتی خدا به او گفت که خودش و هدیش مورد قبول خدا واقع نشده، او بیرون رفت و حابیل رو زد و کشت. حالا چرا او هابیل رو کشت؟ حابیل کاری به او نکرده بود. من معتقدم که قائن از دست خودش عصبانی بود و این عصبانیت رو سر حابیل خالی کرد. به همین دلیل وقتی خدا نزده او آمد از او پرسید اگر کاری که درست بود می کردی آیا مورد قبول واقع نمی شدی؟ و اگر تو کار درست رو انجام ندی که مورد قبول واقع بشی این تو رو نابود خواهد کرد. خیلی از مردم توی زندگیهاشون حابیل رو میکشند چونکه چون که خشم خودشون رو نسبت به خودشون سر دیگران خالی می‌کنند. خوب، خب اگر شما با چنین کسی ازدواج کرده باشید، این بر گفتگوهای شما تأثیر خواهد گذاشت. اگر همسر شما احساس ناامنی داره، ناآزموده نامطمئن، تهاجمی و تهدید کننده هست، گفتگو با چنین کسی بسیار سخت هست. اگر این اشخاص نه تنها از خود عصبانی هستند بلکه این عصبانیت به جایی میرسه که با خودشون در ستیز هستند و این ستیز زگری تا جایی میرسه که خودشون رو نابود میکنن این دقیقا همون کاریه که افراد الکلی میکنن اونها خودشون رو نابود میکنن و معمولا در ریشه اون شما عصبانیت از خود یا ستیز با خود رو خواهید دید که منجر به نابودی خودشون میشه من مدت‌ها روی خانواده انسانی مطالعه می‌کردم و در زمینه‌های مختلفی از طبیعت انسانی سررشته دارم. کسانی که خودشون رو نابود می‌کنند، اونها بالاخره اگر سعی کنید با اونها دوستی کنید، شما را رد می‌کنند و وقتی در رنجاندن شما موفق شدند، تا جایی که شما از اونها دست کشیدید، رو به کس دیگری می‌کنند و میگن ببینید این هم یک نفر دیگه که فکر می‌کنه من خوب نیستم. پس می‌بینید که من واقعاً خوب نیستم. من خیلی ها رو میشناختم که این کارو میکردن زنی بود که این کارو میکرد و من نزد خدا عهد کردم که به هر حال او رو محبت کنم من سالها شغل خوبی نداشتم من تنها کسی بودم که او توی این دنیا داشت او منو خیلی پس زد او چیزهای زشتی در مورد یکی از دوستان خوب من گفت و من از دست او عصبانی شدم به او گفتم میدونی که یک کلمه از حرفهای تو حقیقت نداره شاید باور نکنید این یک انفجار بود ما مجبور بودیم توی یک ماشین با همدیگه به کلیسا بریم و هر کدوم از پنجره به بیرون نگاه می این واقعا یک فاجعه بود و تنها کاری که او کردیم بود که گفت میبینی حتی او هم فکر میکنه من آدم خوبی نیستم. من تعجب می کنم که مردم چطور میتونن این کار را خب اگر شما با چنین کسی ازدواج کردید اگر همسرتون چنین مشکلی داره اگر شما این عوامل روانشناسی رو در اونها میبیید باید این رو درک کنید تا زمانی که اونها از این مشکلاتشون خلاص نشودن همونطوری که در ابتدا گفتیم اگر هر دو طرف مشکل دارن و یا یکی از طرفین مشکل دارن تا زمانی که کمک نگیرن و از این مشکل خلاص نشن اونها والدین خوبی نخواهند بود اگر یکی از طرفین بیمار باشن شراکت بین این دو نفر بیمارگونه خواهد بود حالا اگر شما با شخص مشکلداری ازدواج کردید آیاتی هست که نشون میده شما چطور از پس زندگی با چنین شخص مشکلداری بربییید من بارها این رو موعظه کردم یک بار اعلام کردم که میخوام در مورد نحوه زندگی کردن با افراد مشکلدار موعظه کنم اون روز جمعیت زیادی در اون جلسه حاضر شدن. اما هر کسی که به جلسه آمده بود فکر می کرد که طرف مقابلش مشکل داره این واقعا خیلی جالبه من فکر می همه ما به نوعی با افراد دار زندگی میکنیم اما اگر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 اونها در سیاح چال شیطان هستند و شما نمیتونید اونها رو خارج کنید. فقط خدا میتونه اونها را آزاد کنه. اما کاری هست که شما میتونید انجام بدید. شما میتونید در سمرات روح بمونید. سه تا از سمرات روح هستند که اینجا به اونها اشاره شده. ملایمت، صبوری و مهربانی. همه اینها ثمرات روح هستند و چیزهای ای هستند و اگر شما در این ثمرات روح بمونید، این در رو برای خدا باز میکنه. و برای شیطان میبنده و به شما فرصتی میده که توجه اونها رو جلب کنید و بعد حقیقتی رو که میتونه اونها رو آزاد کنه در مقابل اونها قرار بدید حالا وقتی به اون مرحله رسیدید که بگید من نمیتونم تو میتونی چون که او میگه خدای لایتناهی ممکنه به اونها روح توبه بده که به حقیقت اقرار کنند ببینید این بر عهده شما نیست که به حقیقت اقرار کنید بلکه بر عهده اونهاست و اگر خدا به اونها روح توبه بده و اونها به حقیقت اقرار کنند اگر خدا روح توبه رو به اونها بده و اونها بپذیرند و دریافت کنند بعد او میگه اونها از چنگال شریر آزاد خواهند شد اینجا حقیقت بسیار عمیقی هم هست اونجایی که میگه مشکل اونها اینه که با خودشون مخالفت میورزن کلمه خود در اینجا به معنی فردیت هست منحصر به فرد بودن هر شخصی که او رو از دیگران متمایز می اونها با این فردیت مخالفت می اونها با اراده خدا برای زندگی هاشون مخالفت می کنند. اما اگر شما در سمرات روح بمونید و اجازه بدید خدا به این ترتیب توسط شما کار کنه اون موقع اونها خودشون را از چنگال شیطان آزاد خواهند کرد شما به این ترتیب میتونید با کسی که مشکل روانشناسی داره زندگی کنید این مشکلات گفتگوها و روابط شما رو مختل می کنه. یک راه ساده دیگه هم می دعا کردن باشه. همون دعایی که ایسا بر روی صلیب دعا کرد. پدر اونها رو ببخش. اونها نمی دونن چی کار میکنن. بهش فکر کنید عیسی از روی صلیب برای دشمنانش این دعا رو کرد. حالا اگر ایسا برای دشمنانش این دعا رو کرده، شما فکر می کنید نمی این رو برای همسرتون دعا کنید؟ اگر اونها مسئول کاری که میکنن نیستند چون که مشکلات واقعی امیق دارن خب اون موقع شاید این دعا برای شما معجزاتی به بار بیاره پدر او رو ببخش چون اون نمیدونه چیکار میکنه اگر همسر شما فکر میکنه ناپلئون هست سعی نکنید به کتابهای تاریخ مراجعه کنید تا او رو متقاعد کنید که ناپلئون نیست منظورم اینه که این راهی نیست که بتونید مشکلتون رو حل کنید فقط خدا میتونه چنین مشکلی رو حل کنه پس شما فقط در سمرات روح بمونید و دعا کنید که خدا با او ملاقات کنه چون که همه میدونیم که خدا بزرگتر از هر مشکلی هست این چیز لاینحلی نیست آیات زیادی در کتاب مقدس هست که به ما میگه که چطور این کار رو بکنیم دوباره همونطور که گفتیم شما باید همیشه این احتمال رو در نظر داشته باشید که شما میتونید کسی باشید که اون مشکل رو داره و بنابراین شما باید به نصیحت عیسی در پنج آیه اول متاهفت هفت گوش کنید که گفته اول چوب را از چشم خودت در بیار تا بتوانی خوب ببینی و به همسرت کمک کنی که پرکاه را از چشمش در بیاره حالا آیه دیگری در راستای همین آیه در اول تیموتاوس باب چهار آیه 16 هست که میگه مراقب خود و تعالیمت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن چون به این وسیله هم خود و هم آنانی را که به تو گوش می‌دهند نجات خواهی داد شما میتونید اون رو در ازدواجتون اینطور طور به کار بگیرید اگر شما وارد کلام بشید و کلام وارد شما بشه و اون را برای خودتون به کار بگیرید اون موقع نجات رو تجربه خواهید کرد و بعد وسیله‌ای خواهید شد برای نجات اون شخص مشکل دار که با او زندگی میکنید حالا در خاتمه میخوام کمی در مورد برقراری ارتباط به عنوان یک خانواده صحبت کنم وقتی که به بحث سرپرستی رسیدیم، به طور مشروح در این باره صحبت خواهیم کرد. اما اگر شما ای با فرزندان هستید، مسئله برقراری ارتباط فقط به شما و همسرتون محدود نمیشه. من معتقدم مهمه که به این واقعیت اقرار کنیم که در خانواده های مانند خانواده های ما، مثلا تفاوتایی هست که ما باید در الگوی گفتگوهامون ملاحظه کنیم و باید زمان درست رو برای گفتگوهای مختلف اولویت بندی کنید به این دلیل که شما قبل از ازدواج باید برای ازدواجتون مدتی طولانی دعا کنید و برای بچه دار شدن باید اپیش برای زمانش دعا کنید چون که وقتی بفهمید که چه مسئولیتی دارید این واقعا تعهد بزرگیه ما در خانواده خودمون انواع مختلف ارتباطات رو داریم که از این قرار هستند. ارتباط بین زن و شوهر پدر و مادر گفتگوهای پدر و مادر معمولا سر میز غذا انجام میشه ما قبلا اشتباه میکردیم وقتی برای صرف شام و وقت گذاشتن با همدیگر به عنوان زن و شوهر بیرون میرفتیم بعد متوجه میشدیم که داریم در مورد بچه ها جر رو بحث میکنیم اما بعد فهمیدیم که این یک فاجعه است که ما زمانی رو که به زن و شوهر اختصاص داره تبدیل به های پای میز غذا کردیم مشکلاتی که در مورد بچه ها هست مربوط به صحبت‌های بین پدر و مادر هست چونکه این دو نوع گفتگوی مختلف هست. نباید اونها را با هم قاطی کنید اما ما توی خونمون گفتگوی بین والدین و همه فرزندان را همزمان هم داریم البته این فقط در مورد مطالب روزانه هست. بعد گفتگوی بین پدر و همه فرزندان را داریم زمانهایی بوده که من فکر کردم که لازم همه بچه ها را با هم جمع کنم و بدون حضور مادرشون با اونها گفتگو بکنم مخصوصاً اگر اونها اونطور که باید رفتار خوبی با مادرشون نداشتند. بعد من گفتگویی با بچه‌ها دارم که اونها از مسائلی که ناراحت هستن صحبت کنند. و من این رو به دل نمیگیرم. همسر من نمیتونه این جور مواقع طاقت بیاره. او از پس این بر نمیاد. پس معمولاً من بچه‌ها رو بیرون میبرم تا با اونها به طور واضح درباره مسائلی که ناراحت هستن صحبت بکنم. من فکر می کنم برای یک پدر خیلی مهمه که با بچه‌هاش وقت داشته باشه و خوبه که مادر هم بدون حضور پدر با بچه ها وقت داشته باشه ما جلسات مختلفی داشتیم پدر با دو پسر و مادر با دو پسر مادر با سه دختر و پدر با سه دختر پدر با پسر بزرگ پدر با پسر کوچک من فکر میکنم پسرهای ما خیلی با هم فرق دارن من شبهای ای با هر کدوم از پسرها داشتم بعد خیلی دوست داشتم که با دخترهام قرار بذارم و اونها هنوز همین را به یاد میارن من با سه دخترم بیرون میرفتم. و بعد همسرم را هم تشویق می کردم که همون کار رو بکنه و بعد با تمام خواهر و برادرها هم قرار می زاشتیم. ما اون موقع دوست داشتیم فقط گوش کنیم ما دوست داشتیم که اونها بدون حضور ما هم با هم وقت بگذرم به این ترتیب ما روی هم رفته شاید نزدیک سین و ارتباط متفاوت در خانه داشتیم حالا به نظر من پر اهمیت ترین ارتباط در بین همه اینها ارتباط بین زن و شوهر هست شاید این قابل بحث باشه. اخیرا وقتی همه بچه های ما با پنج نوه ما به دیدن ما اومده بودن، نمیتونستم همسرمو پیدا کنم. پسرم به اتاق من اومد و من از او پرسیدم مادرت کجاست؟ و او گفت او کاملا سرگرمه. او با نوههاش مشغوله. من گفتم این وسط کی از همه مهمتره او گفت نپرس. خب میدونی این جای بحث داره. اگر شما در وضعیتی قرار می گرفتید که باید انتخاب می کردید یا فرزندتون یا شوهرتون رو نجات بدید فکر می کنید کدوم رو نجات می دادید. من فکر نمی کردم بخوام جوابشو بدونم ببینید محبت مادرانه چیز بسیار قوی هست. اما من حداقل دو دلیل دارم که میگم مهمترین رابطه و قویترین رابطه رابطه بین زن و شوهر هست. بعد نوع دیگری از گفته هست. آیا در مورد اون مرد شنیدید که گفته چطور میتونید به همسرتون بگید که، رئیس و تمام همکارانتون رو برای شام به خانه دعوت کردی؟ و مرد جواب داد این درست مثل بغل کردن یک جوجه تیغیه. خیلی با دقت. باید کاملا با ملاحظه و با دقت به او بگید. خب چطور میشه جوجه تیغی رو بغل کرد؟ ببینید وقتی گفتیم مکالمه کردن دادن و گرفتن اطلاعات و یا پیغام و یا هر چیز دیگری هست، حالا که این چیزی دو طرفه هست وقتی چیزی میدید، باید دید که طرف مقابل اون رو چطور دریافت میکنه؟ وقتی گفتگو می این جسارت چون که گاهی حقیقت واقعا گزنده است. پس باید تصمیم بگیرید که یا گفتگو نکنید و دور بشید یا خطر نیش خوردن رو بپذیرید و نزدیک تر بشید و جوجه تیغی رو بغل کنید. این با متن من جور در میاد. در چرخه معمولی زندگی بعضی ها میگن ما میتونیم زندگیمون رو مانند کیک به سه قطه جدا کنیم. یک قطع از زندگی ما، صرف پرورش یافتن و تعلیم گرفتن از والدینمون میشه و یک سوم بعدی رو صرف پرورش دادن فرزندانمون به همراه همسرمون میکنیم و یک سوم بقیه رو که آشیانه خالی شده به تنهایی زندگی میکنیم حالا منظور از این اینه که شما دو سوم از زندگیتون رو با همسرتون خواهید گذران. پس گفتگو و ارتباطی که واقعا لازم روش کار بکنید همین یکیه چون که بعد از رفتن بچه ها همسران هستند که با هم میمونند به همین خاطر من معتقدم که ارتباط زن و شوهر مهمترین ارتباط ها هست چون اگر رابطه بین زن و شوهر آسیب ببینند بقیه روابط به شدت آسیب خواهند اما من فکر می کنم مهمه که بفهمیم رابطه زن و شوهر از این نظر هم اهمیت داره چون که شما میخواهید دو سوم زندگی خودتون رو در چرخه معمولی حیات با همسرتون زندگی کنید من متاسفم که بگم بسیاری از مردم اشتباه می کنند و در حالی که بچه ها رو پرورش میدن به جای اهمیت دادن به همدیگر بچه ها رو در اولویت قرار میدن. حالا از نظر من و همسرم کلمه مؤثر بیشتر کلمه ازدواج نیست بلکه رابطه متقابل هست و تا زمانی که تفاهم متقابل هست میتونید از پس خیلی چیزها بر بیایید ما همیشه با هم توافق می کنیم بچه ها رو در اولویت قرار بدیم. او همیشه گفته اگر وقت محدودی داری اون رو به بچه ها اختصاص بده و او هم اگر انرژی محدودی داره من هم ناراحت نمیشم که او اون رو به بچه ها اختصاص بده. ما هر دو روی این توافق کردیم اما این میتونه خیلی خطرناک باشه چون در حالی که بچه ها بزرگ میشن اگر شما روابط خودتون رو نادیده بگیرید که غالبا هم همینطور میشه وقتی بچه ها سر زندگی خودشون رفتن به همدیگر نگاه میکنید و می هیچ رابطه ای با هم ندارید. و میفهمید فهمید که هیچ رابطه و زناشوی درستی ندارید. شاید تعجب بکنید اگر بدونید که اکثر طلاقها بعد از سر و سامان گرفتن بچه ها پیش میاد چون که در طی سالیان دراز ما روی رابطه خودمون کار نمی و بچه ها رو در اولویت قرار میدیم. فقط بچه ها، بچه, ها, بچه ها و حالا اونها رفتن. من زنان زیادی رو می شناسم که می من دیگه خسته شدم، از پا در اومدم بچه ها رفتن و پشت سرشونم نگاه نمیکنن حالا من چیکار باید بکنم من با همسرم هیچ رابطه ای نداریم هیچ گفتگوی مشترکی با هم نداریم حالا چیکار باید بکنیم؟ به همین دلیلی که گفتم خیلی مهمه که روی رابطه زناشوییتون کار کنید و همونطور که در ابتدا گفتم برقراری ارتباط چیزی هست که به شما ابزاری میده تا بتونید اتحاد و یگانگی رو در ازدواج خودتون حفظ کنید پس به همین دلیلی که باید روی صحبت کردن خیلی تمرکز کنید. در خاتمه باید بگم خیلی سخت هست که ما بتونیم بعضی از این حلقه ها رو تقویت بکنیم و اونها رو یکی بکنیم. اگر شما با هم سازگاری ندارید، اگر ذریب هوشی یکی از ما صد و دیگری 85 هست، این تغییر نخواهد کرد. شما باید خیلی از چیزها رو بپذیرید. اما برقراری ارتباط چیزی هست که شما میتونید روش کار بکنید. اگر واقعا مایل باشید، کتاب بسیار عالی در این زمینه نوشته شده که میتونه اطلاعاتی مفید و سازنده در این زمینه به شما بده. و اگر روی برقراری ارتباطتون کار بکنید، میتونید ابزاری به دست بیارید که در تمام جنبه روابط شما کار میکنه. من صحبت بیشتری در زمینه گفتگوهای خانوادگی دارم، اما اونها رو به جلسه بعد ماکول میکنم. خدا نگهدار. دوستان گفتگو چیزیه که شما اگه واقعاً بخواید میتونید شخصا در موردش کاری بکنید. کتابی فوقلادی در این مورد نوشته شده و اطلاعات زیادی در این مورد هست که میتونید از اونا استفاده کنید و اگه بروی گفتگواتون کار کنید اون وقت ابزاری به دست آورد که میتونه در کل رابطی ازدواجتون کار کنه. در درس بعدی نظریات بیشتری در مورد گفتگو و روابط خانواده رو با شما درمیون خواهیم گذاشت.